یا رسول الله چه خوش است تو این بوی شما بوی مشکوهت رو انبر نیست و چون بوی شما یا رسول الله خدا چون جمل عالم آفرید هستی عالم تو فیل جلب روی شما یا رسول الله گر شده هست و بیشک روی نقش از رونق کوی شما یا رسول الله همه ذرات عالم سر سر. آشقا بر وصف روی خلق نیکوی شما یا رسول الله مزی انگر شده خلده بریم هست تو بیشک روی نقش از رونق کوی شما یا رسول الله همه ذرات عالم سر به سر عاشق بر وصف و روی خلق شما یا رسول الله یا رسول الله فدای روی زیبایت شوم دل ربوده عاشقان را پرتو شما. يا آلم روی, روی شما یا رسول الله همه ذره عالم سر به سر در روی خلق شما یا رسول هم رو بوده جمل دلها چشم جاد روی شما یا رسول الله فدای روی زیبا یحچون یا رسول الله فدای روی زیبا یحچون دل رو بوده را پرتوه روی شما یا رسول الله و هرها جمل کم رانه تا به عالم در فشان شو لا لا شما یا رسول الله تو میزان قیامت برکشان رحمت للعالمین و وزن ترازو شما رحمت للعالمین و زنه یا شما یا رسول الله هر جا جمله کلرونا شدند توب عالم دور فشور شد لؤلؤ شما یا رسول الله چمیزان قیامت برکشان رحمت للعالمین وزل ترازو یا شما یا رسول یا رسول الله فراقت کرد ملک دل خراب کی شود مهراب او تاقد و آبروی شما کی شود مهراب او تاقد و شما یا رسول الله به قربانی دوگی سوی شبم جان و ایمانم فدا یک سر موی شما یا رسول الله فرقت کرد ملک دل خراب کیش آمد محراب او تا قد شما کیش از محراب او تا قد ابروی شما یا رسول یا رسول الله به جنت جبرئیل در دربان توست از برای آن که بیند هر زمان روی شما از برای آن که بیند هر زمان روی شما یا <تصفح> رسول الله برخطانه بهشت که کی رساندی شنبه نخل نجوی شما يا رسول الله دربان توست از برای آنکه که بیند هر زمان روی شما یا رسول الله هزار انتفاس لفعذام هر زمان هر دم نسار روح خوشبو شما یا رسول الله چه خوشبو است اینو شما بویمش کارات است تشمو یا شما یا رسول الله خدا چون جمله عالم آفرید هستی عالم تو فین یجلب رو یا شما هستی عالم تو فین یجلب رو یا شما